زار افسان به نام خدای یگانی مهربان سلام میگن آلبرت انشتین در ریاضیات ضعیف بود و تخیل خودش رو با خوندن افسانهها ها تقویت میکرد و معتقد بود که کودکان باید افسانه های بسیاری بخونن چرا که تخیل اونها رو قوی میکنه در برمیه هزار افسان افسانه ای رو از مردمان سرزمین اسپانیا براتون انتخاب کردیم به نام افسانه ملکی گلها برگرفته از کتاب قصه ها و افسانه های اسپانیا به قلم مین سویه با ترجمه ای از حسن سرف قدر. پادشاهی بود که پسر 14 ساله ای داشت که خیلی شجاو و دلیر بود یه روزی بادشاه به همراه پسرش که تومازیتو نام داشت در خیابون زیبایی که دو طرفش رو درخت های چنار گرفته بود در حال قدم زدن بودن اونا همچنان که میرفتن به چشمه نیم پنهان در میون درختان بادام و خرزهره رسیدن پادشاه گفت این چشمه رو تا حالا ندیده بودم. آه خیلی زیبا و زلاله. هم میام اینجا اگه گلهای رز شکفته باشن اونا رو برای مادرت میچینم. پسر با خوشحالی گفت، فکر خوبیه پدر. مادر حتما از دیدن روزهای شکفته یه زیبا خوشحال میشه. اونا به قصر برگشتند و فردا دوباره راه همون خیابون زیبایی که دو طرفش رو درخت های چنار گرفته بود در پیش گرفتن به کنار چشمه که رسیدن دیدن یکی از غنچه ها به صورت گلی زیبا شکفته شده و گل ها و یه سفیدش به تنهایی بیش از یه باغچه گل اطرافشانی میکنه. می کنه گل رو چید در این موقع تومازیتو که روی چشمه خم شده بود فریاد زد پدر پدر نگاه کن ته چشمه رشته طلایی پریا رو میبینم. پادشاه گفت: پسرم، حرفای بچگانه نزن. بیا. بیا اینجا. با گل کردن آب خودت رو سرگرم کن. تومازیتو با تأسف از پدر اطاعت کرد. اون زمری که در کنار پدرش شاه میرفت، به خاطر می آورد. یکی از خدمتکاران پیر که اهل آستوری بود، برایش تعریف کرده بود تو مازی تو، پسرم، توی چشمه های اگه کسی رشتهای تلایی و درخشان روی شنها ببینه، باید اونو بگیره و بکشه، چون در انتهای اون رشته حتماً یه پری وجود داره. تو با خودش فکر کرد، خدای من، خیلی دلم میخواست ببینم، آیا توی چشمه پری وجود داری یا نه؟ پادشاه وقتی گل رو چید، پسرش رو صدا زد که زودتر به قصر برگردن. چند لحظه بعد اونا به طرف قصر حرکت کردند. پادشاه گل رو به ملکه هدیه داد و ملکه با دیدن گل به وجد اومد و گفت، آه خدای من، خدای من، تا به حال گلی به این زیبایی ندیدم، چه عطر داره. بعد اونو توی یه لیوان آب روی میزی که در نزدیکی اون هاش سرگرم گلدوزی بودن گذاشت. چند دقیقه بعد، ندیمه های جوان یک بار منقلب شدند. بعضی از آنها دست از کار کشیدن و به رؤیا فرو رفتن و آه کشیدن. بعضی دیگه به شدت هوس کردن آواز بخونن و چندتایی هم پاهاشون رو به نحوی موزون حرکت میدادند. در این میون پیرترین ندیمه که گیسوان سفیدی داشت و مراقب دیگر ندیمه ها بود، ندیمه های جوان رو به متانت رفتار در مقابل ملکه دعوت کرد. ملکه لبخندی زد و به ندیمهای جوان گفت ها دخترای من فکر کنم بدتون نیاد که یه کمی گردش کنین خب بریم به باغ نیم ساعت دیگه که برگردین بهتر میتونین کار کنین ندیمه پیر سری داد و گفت ولی ملکه ی عزیز، من فکر کنم که اطربوی این گل باعث آشفتگی اونها شده و بعد مکسی کرد و ادامه داد مم. توی تمام عمرم اترو بویین چون این شیطانی به مشامم نرسیده بود باور کنید من هم اگه خودم رو نگه نمی داشتم مثل این دختران جوان شروع به آواز خنده می کردم. حالا اگه ایچه سرتین این گل رو که هیچ بوی خوشی به نظرم نداره دور بندازم من فکر می کنم گلی که چون این بوی وصف داشته باشه قطعا گل خوبی نیست. به بعد بلند شد که به سراغ گل بره. اما ملکه گفت نه نه نه نه این گل رو پادشاه به من هدیه داده و میل دارم اونو رو نگر دارم. ندیمه پیر با نگرانی گفت ملکه عزیز من از وجود این گل توی اتاق شما نگرانم. شاید اون ملکه کلام ندیمه پیر رو قطع کرد و گفت باشه باشه باشه میتونی اونو به اتاق ها ببری و توی جواهرات جواهراتم بذاری این گل اونجا خشک میشه و بدون شک کمی از بوی وسوسانگیز و نافظش کاسته میشه پیرزن فورا گل رو برداشت و اونو انداخت توی صندوقچهی جواهرات ملکه به بعد در صندوقچر رو مکم بست، کلید رو سه بار چرخوند تا گل کاملا محبوس بشه و از زیر لب گفت از شرش خلاص شدیم، این گل یک گل شیطانیه، من مطمئنم. به بعد ندیم جوان رو صدا زد تا سر کارشون برگرد. شب بعد پادشاه که به خواب امیقی فرو رفته بود با صدایی از خواب پرید قبلهٔ عالم قبلهی عالم در رو باز کنید پادشاه که خواب آلود بود فکر کرد ملکه اونو صدا میزنه ولی ملکه خواب بود پادشاه که تعجب کرده بود بلند شد و به طرف در رفت صدا باز هم بلند شد قربان در رو باز کنید. در رو باز کنید. پادشاه در رو باز کرد و در مقابل خودش دختری زیبا رو دید. دختر به پادشاه گفت. من ملکه گلها هستم. پادشاه که سخت مجذوب زیبایی دختر شده بود گفت. ملکه گلها؟ خب. با من چیکار دارید؟ ملکه گلها گفت: قربان من اومدم تا با شما ازدواج کنم. پادشاه خنده کوتاهی کرد و گفت: ازدواج؟ ولی من زن و فرزند دارم. همسرم رو هم خیلی دوست دارم. ملکه گلها گفت: ملکه بندهزی کافی همسر شما بوده. شما شما باید با من ازدواج کنید پادشاه گفت آه شما زیبا و جوونین و کاملا قدرتمند ولی ولی من بدون اجازهی منی که نمیتونم با شما ازدواج کنم تازه تازه بعید میدونم اون راضی به این ازدواج بشه منکه گلها خنده ای کرد و گفت <تصفيق> این کار رو بر احده من بگذارید قربان به بعد پادشاه رو به بارگاه خودش برد و از اون خواست که فرمانده نگهبان ها رو احسار کنه و به اون دستور بده که تمام دستورهای ملکی گلها رو اجرا کنه پادشاه که سخت مجذوب زیبایی ملکی گلها شده بود میل اون عمل کرد ملکه گلها که پادشاه رو اسیر خودش کرده بود و از علاقه پادشاه به خودش دوچار غرور شده بود فوراً به نگهبانهای غز گفت همین الان ملکه رو همون طوری که خوابیده بردارین و بندازین توی سیاه چال در زندان رو هم دیوار بکشین از این به بعد من ملکم و همه شما باید از من اطاعت کنید صبح روز بعد تومازیتو پسر پادشاه مثل هر روز برای ادای احترام به اتاق مادرش رفت. اما با کمال تعجب دید که به جای ملکه مادر کسی دیگه اونجاست. تومازیتو با نگرانی پرسید. مادرم؟ مادرم کجاست؟ ملکه گلها گفت. مادرت؟ تومازیتو سری تکون داده گفت. بله، ملکه کجاست؟ ملکه گلها خنده موزیانه کرد کرده گفت. من ملکم ملکه تمام این سرزمین تومازیتو تو با عصبانیت گفت شما مادرم نیستین مادر من ملکه تمام این سرزمینه اون کجاست؟ تو چی هستی؟ و توی اتاق مادر من چی کار می کنی؟ ملکه گلها با غرور جواب داد من؟ همون کسی هستم که باید از این به بعد ازش اطاعت کنی تومازیتو با نارتی گفت، اگه پدرم دستور بده از شما اطاعت میکنم، ولی اون هرگز نمیتونه از من بخواد تو رو مادر صدا کنم، چون چون تو مادر من نیستی. و در این موقع پادشاه وارد شد، و با سردی نگاهی به پسرش انداخت و از ملکه گلها خواست که همراه اون به باغ بره و قدری گردش کنه. تومازی تو با ناراحتی اتاق ملکه رو تر کرد و از اون به بعد به دنبال مادرش گوش و کنار غص رو گشت. اون به زیر زمین ها سرزد، پشت در تمام سیاه چال ها به گوش ایستاد، مادرش رو صدا زد ولی بیفایده. اما اون باز هم به جستجو ادامه داد تا اینکه یه دفعه در مقابل نوعی هواکش که در سطح زمین بود ایستاد، صدایی شنید، انگار صدا از زیر زمین به گوش می رسید. تومازیتو در مقابل هواکش زد و پرسید کی اونجاست صدای گریه زنی به گوش رسید تومازیتو فریاد زد خانم چرا گریه میکنین شما کی هستین صدا گفت من من ملکم تومازیتو فریاد زد مادر مادر من من تومازیتوی کوچیک تو توام ملکه مادر با گریه گفت آه، تومازی تو یه بیچاره من من دارم از گرسنگی و تشنگی میمیرم. میرم تومازی تو فوراً به آشپزخونه رفت مقداری غذا و آب برداشت و از راه هواکش به داخل سیاه فرستاد و پیش مادرش سوگند یاد کرد که اونو از زندان نجات بده و بعد به کاخ برگشت پادشاه برای شکار از قصر خارج شده بود و ملکهٔ گلها مرتب به این و اون امر و میکرد اون تومازیتو رو احضار کرد و گفت تومازیتو تا زمانی که پدرت از شکار برنگشته حق نداری از غصر خارج بشی تومازیتو جوابی نداد و اتاق ملکهٔ گلها رو ترک کرد ملکهٔ گلها به خودش گفت لازمه که شر این بچه ای گستاخ رو از سرم کم کنم. و بعد به طرف چشمه شنها رفت. اونجا همه چیز مثل سابقارون بود. ولی دو گنچه ای که پادشاه قبلا دیده بود وجود نداشت. ملکه گلها به چشم نزدیک شد و سرش رو به روی آب چشم خم کرد. رشته طلایی در ته چشم می درخشید. ملکه گلها رشته رو به دست گرفت و شروع کرد به گلوله کردن نخها. اون مدت زمان زیادی نخ جم کرد و وقتی رشه تلایی به صورت کلافی به درشتی یه مشتر اومد آب شروع به جوشیدین کرد و زن جوانی کاملا شبیه ملکی گلها از اون خارج شد ملکی گلها گفت خوهرچان باید در نابود کردن تو تو به من کمک کنی فردا اونو اینجا میفرستم باید اونو توی کاخمون نگه داری و بعدطوری اونو از بین ببری که پدرش باخبر نشه روز بعد ملکه گلها تومازیتو افسانه ما رو احضار کرد و گفت فوری برو از چشمه گلها برام یک کوزه آب بیار امروز حواس آب چشمه کردم. تومازیتو که چاره‌ای جز اطاعت نداشت کوزهای برداشت و به طرف چشمه به راه افتاد تومازیتو قبل از رسیدن به چشمه با پیرمردی ژنده پوش برخورد کرد پیرمرد با دیدن تومازیتو دستش رو به طرف اون دراز کرد و گفت ای جوان اگه میتونی به من کمک کن؟ تومازیتو که پسری مهربون و دلرحم بود اسبش رو متوقف کرد و یه سکه یه نقره به پیرمرد مرد جند پوش داد. پیرمرد از اون پرسید کجا میری پسرم؟ تومازیتو جواب داد میرم از چشمه شنها آب بیارم. پیرمرد گفت بس گوش کن ببین چی میگم تو در خطری تو مازی تو پرسید خطر؟ چه خطری؟ پیر مرد پوش گفت توی اون چشم دوتا پری که خواهران ملکه گلها هستند زندگی میکنن بسرم اونا سعی میکنن تو رو نگر دارن بنابراین به اونها نگاه نکن به هم گوش نده بدون اینکه از اسب پیاده بشی آب برده ها رو به قصر برگرد. تومازیتو تو از مرد جند پوش تشکل کرد و به راهش شدامه داد. به چشمه که رسید اسبش رو به تاخت در آورد. پاهاش رو مکم به رکاب ها تکی داد. دست چپ رو به زینگو لاب کرد و خم شد و کوزش رو به یک بار پر از آب کرد. در این موقع دوتا زن جوون رو دید که اونو صدا می و التماس می که از اسب پیاده بشه. ولی تو ماضی ما به حرفهای اونها گوش نداد و یه راست به قرض برگشت. تومازیتو به قصد گرسنید کوزه آب رو به خدمت کاری داد و گفت این کوزه رو برای خانومت ببر و به اون بگو که تومازیتو از چشمه شنها برگشته ملکه گل‌ها وقتی این خبر رو شنید نزدیک بود از فرط حیرت قلبش بییسته چند روز بعد دوباره تومازیتو رو احضار کرد و به اون گفت برو و از چشمه شنها برای من سه تا پرتقال بیار مم. امروز خیلی حوث پرتغال کردم. تومازیتو تو سوار بر اسب برافتاد. افتاد. باز هم توی را به پیر مرده برخورد پوش برخور کرد. اون گفت که ملکه گلها از اون تغاظایی سه پرتغال کرده. پیرمرد مرد گفت، پسرم باید خیلی مواظب باشی. باز هم به هیچ وجه از اسب نشو. بر برنگرد و سه پرتغال رو در حال تاخت بچین. تومازیتو وقتی به چشمه رسید دو زن رو دید که منتظرش بوده یکی از اونا تنابی به طرفش انداخت ولی تومازیتو توقف نکرد روی رکاب ها بلند شد و دهنی اصر رو رها کرد دو دست رو بالا برد و سه تا پرتغال چید وقتی به قصد برگشت به خدمتکارا گفت این سه پرتغال رو برای خانومت ببر و بگو که من از چشمه شنها اومدم این بار ملکه گلها خواهران بی ارزه رو لعنت کرد و تصمیم گرفت خودش شخصا از تومازیتو تو انتقام بگیره. بنابراین اون رو احزار کرد و گفت من تو رو از قصر بیرون می کنم. اگه یه بار دیگه مادرت رو ملاقات کنی دستور میدم دم فاصله سرش رو از تنش جدا کنند. بیرون. بعد دستور داد که تومازیتو رو از قصر بیرون. تومازی تو یه افثانه ما رفت و رفت و رفت تا اینکه باز به پیرمرد مرد پوش رسید و برای اون تعریف کرد که چجوری ملکه گلها اونو از قصر بیرون کرده و مادرش رو هم توی سیاه چال قصر انداخته. پیرمرد گفت گوش کن تومازی تو اگه شجاعتش رو داشته باشی راه نجات دادن مادرت رو نشونت میدم من راهی رو که به قصر پریهاخت میشه بلدم. تو رو تا اونجا میبرم، سای وارد قصر بشی، توی قصر در اتاقی دور افتاده، سه تا شمع روشن وجود داره، تو پرسید، این شما برای چیه؟ پیرمرد گفت، آه این ها شعله زندگی پریها ها هستن، یه فوت کوچیک برای خاموش کردن اونها کافیه، و این فوت به زندگی پری ها پایان میده، حالا، ها از جادوی اونن نمیترسی بیا تومازی تو به ساده ای گفت بریم من آمادم تومازی تو لباس های پرزر و برق خودش رو اصلا در آورد و لباس ژنده رو که پیرمرد به اون داد گرفت اون دست و صورتش رو سیاه کرد و به راهنمایی پیرمرد تا قصر پریها ها رفت و به تنهایی وارد اون قصد شد یکی از پری ها اونجا بود توماضی تو اون گفت ملکه گلها توی یه چشمه شن منتظر شماست پری گفت تو کی هستی؟ تومازیتو تو جواب داد من بوسچران کاخم. ملکی گلها منو فرستاده که بهتون بگم منتظر شماست اون اون گفت دستش به رشته طلایی نرسیده نمیدونم منظورش از این حرف چی بود پری گفت بسیار خوب الان میرم ولی تو رو تا برگشتنم اینجا نگر میدارم آه وای به حالت اگه دروغ گفته باشی تو موزی تو توی اتاق کوچکی تنها موند اون تونست به هر زحمتی شده از اونجا فرار کنه به همه جای غص سرک بکشه تومازی تو به راهروی تاریکی رسید چند قدم که جلوتر رفت خودش رو در برابر در سنگین و قفل شده ایدید و با زحمت زیاد در رو باز کرد اون وقت در اتاقی بدون پنجره ست شم دید که توی سه شمدون تلایی گذاشته شده بودن و شعله های هم اندازه داشتند یکی از اون شعله ها که زیباتر بود تاجگلی بر سر داشت تومازیتو با خودش گفت خدای من بدون شک این یکی شعله زندگی ملکه گل هست. اون شم رو کنار گذاشت بعد روی پنجه های پا بلند شد و با تمام قدرت دو شعله دیگر رو با فوت خاموش کرد تومازیتو تو شعله سوم رو که شغلش رو در پناه دست حفظ کرده بود برداشت و به همراه خودش برد و راه کاخ رو در پیش گرفت وقتی رسید شمر و دم در تالاری که ملکه گلها اونجا بود گذاشت و خودش وارد شد ملکه گلها تنها بود و رنگ پریده به نظر می رسید مثل شعلی زندگیش که بر اثر باد در نوسان بود تلو تلو می خوره تو تو بهش گفت خانم من اومدم از شما تقاضا کنم. از این غصب برین و مادرم رو رها کنیم. ملکه ایگلها با شنیدن این حرف گفت. خیر، هرگز. من هیچ فقط اینجا نمیرم. و تو هم امشب میمیره. بله، به دستور من اون میمیره. تومازیتو گفت. در این صورت شما پیش از اون خواهید مرد. فقط یادتون باشه که خودتون اینطور خواستین. تومازیتو این رو گفت و از تالهار بیرون رفت و به شم که همچنان روشن بود نزدیک شد. خواست با نفسش اون رو خاموش کنه که یه دفعه پادشاه آشکار شد. تمازی تو شتابان به طرف پدرش رفت و گفت پدر بگو مادرم رو بیشتر دوست دارین یا ملکه گلها رو؟ پادشاه که بر سر ندامت کاملاً منغرب شده بود جواب داد پسرم من من مادرت رو بیشتر دوست دارم. تمازی تو گفت پس؟ پس این شم رو خاموش کنین؟ پادشاه بدون اینکه به موضوع پی ببره شمی رو که پسرش در مقابل اون گرفته بود فوت کرد. بلا فاصله. از داخل غص صدای فریادهایی به گوش رسید. پادشاه پریشان حال شد. بله، ملکه گلها مرده بود. تومازیتو تو به پدرش گفت، پدر، پدر ملکه گلها مرده و مادرم در در سیاه چاری که جلوی درش تیغه کشیدن منتظره که شما برین و آزادش کنین پادشاه که از افسون ملکه گلها رها شده بود دستور داد تیغه های جلوی در زنون رو بردارن و خودش رو به پای همسرش انداخت و از ملکه خواهی کرد و ملکه اونو بخشید در این موقع پیرترین ندیمه جلو رفت و دست ملکه رو بوسید و گفت ملکه عزیز من بهتر همون بود که این گل لعنتی رو له میکردم. من که داد دیگه هیچ وقت حرفش رو نزنیم من همسرم رو بخشیدم تمام این ماجراها رو دیگه باید فراموش کنیم افثانه ملکی گلها رو از مردمان سرزمین اسپانیا براتون نقل کردم برگرفته از کتاب قصه ها و افثانه اسپانیا به قلم سویه با ترجمه از حسن سرغد افثانه ها کاربرد آموزشی و حتی درمانی دارن در طب سنتی هندوستان برای درمان افراد روانپریش از افسانه‌ها و در فرانسه هم از افسانه‌ها برای آموختن نویسندگی به کودکان استفاده میکنند. هزار رفسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح استستار سید فری برز اجرا مهران دوستی صداوردار نرگس فتحی، تهیه کننده زهرا بدالله زاده افسانه دیگر بدرود